بسم الله الرحمن الرحیم آینه های زل مجموعه اشعار آینی محمد جواد بوستانی چاپ اول پاییز یک شمارگان یک هزار جلد قیمت دواستا پنجاه هزار ریال تراهی جلد الویرا سیامی مشخصات نشر تهران نوآوران دانش 1399 مشخصات ظاهری 73 صفحه شابک 978 خط تیره 622 خط تیره هفتاد و چهار و خط تیره شانزده خط تیره چهار وضعیت فهرست نویسی فیپا موضوع شعر مذهبی فارسی قرن چهارده ردیبندی کنگره پی آی هشتاد و پنج ردیبندی دیویی هشت فا یک معیز 62. شماره کتابشناسی ملی 72